أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن, ما هن امهاتهم إن امهاتهم ایلالا ای ولدنهم و ليقولون لیقولون مِنَ القول وزورا و الله اللہ لعفوغفور سوره و وا... اونطور که ارز کردم سوره مجادله و حشر و صف و ممتحنه این چهار سوره با موضوع دوم سوره حدید مرتبط هستند در سوره حدید دو بحث شد اول انفاق دوم جهاد در این سوره مبارکه این چهار سوره پشت سر هم موضوعیشون جهاد هست اما ضمن مسئله جهاد زجر بر منافقین هست عطاب و سرزنش بر منافقین هست چونکه بزرگترین مانع، مانعان جهاد و کسانی که جلوگیری می کردند از جهاد با دستی سهایشون با تبلیغاتشون اینها بودند. لذا در رابطه با این قوم هست، بیشتر زجر و سرزنش برای منافقین است و چندین قانون و چندین زابت برای اصلاح منافقین یا جلوگیری از بعضی های انها هست. اما در ابتدای سوره بحث زهار پیش می آمد بحث زهار میاد خدای تعالی حکم زهار را و کفاره زهار را در ابتدا بیان فرموده اما زهار چی هست زهار این را میگویند که کسی تشبیه بدهد همسر خودش را خانم خودش را به مادرش به عضوی از مادرش به بلا پشت مادرش شکم مادرش از نظر حرمت تشمیه بدهد خب این زهار میشه و زهار در زمان جاهلیت طلاق بود جدائی بود بین زن و شوهر علامه آلوسی میفرمد وکان الظهارو بالمعنه السابق طلاقا فی الجاهلیه وقیل اول الاسلام هم در زمان جاهلیت و هم در زمان اول اسلام ظهار نوعی طلاق بود کسی اگر همسر خودش را تشبیح میداد به عضوی از اعزای مادرش این طلاق به حساب می آمد در این زمان زنی از صحابیات بنام حضرت خوله بنت ثابت, بنت ثابت آمد خدمت یا بنت علبا، آمد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و و از کنم که شکایت کرد گفتیار رسول الله سرم که اسمش غالباً اوس بود، همسرم با من زیار کرده و مرا تشبیه داده و من الان چیکار بکنم؟ چون در زمان جاهلیت این طلاق حساب میشد و مسلمانان در اسلام یاد گرفته بودند که طلاق اونه که لفظ طلاق باشد، لذا لفظ طلاق را نگفته. لفظ ظهار را گفته و لفظ زهر را گفته و تشبیه داده به و به پشت حکم من چیه آن حضرت صلی الله علیه و سلم چون که هنوز در این رابط حکمی از طرف خدای از و نازل نشده بود و صادر نشده بود آن حضرت توقف فرمودند و گفتن که اون که از گذشته مشخص است و حکم گذشته است تو بر او حرام شدی و جدیدن حکمی درباره تو و امثال تو بر من نازل نشده آن حضرت فرمودند که ما ارا که الا قد حرمتی علی من نمی بینم چیزی دیگر یعنی نظری دیگر ندارم مگر اینکه تو بر او حرام شدی و لم امر فی شانک بشی و من در رابطه با تو امر نشدم که چه دستوری بدم چه حکمی صادر بکنم طلاق یا نیست خداوند چیزی به من نفرموده یک نکته ایرنج خدمت شما کنم که معلوم میشه که انبیاء الهی همونطور که در امور تکوینی مختار نیستن در امور تشریعی هم مختار نیستن یعنی در باره مسائل شرعی هم پیامبر از خودش نمیتواند که حکمی به حلت بده یا به حرمت بده چینین اختیاری ندارد چینین ولایتی ندارد وقتی که پیغمبر چنین اختیاری ندارد پس غیر پیغمبر به طریق اولا اینجا پیغمبر خدا صلی الله علیه و می توقف می‌فرماید میگوید که هنوز خدا به من دستور نداده هنوز درباره تو امثال تو چیزی گفته نشده آیه نازل نشده معلوم میشه که خداوند پیغمبر خودش را مختار کل نمیداند. خودش را برای در همه شریعت و احکام شریعت شاره مطلق نمیداند که هرچی من بگویم حلال، هرچی من بگویم حرام نه خیر. پیغمبر چینی، چیزی حتی خود پیغمبر هم نمیتواند برای خودش چیزی حرام بکند. ما در سوره تحریم میخانیم که پیغمبر وقتی که بر خود اصل را حرام می کند خداوند از زوجال تذکر میده. که ای نبی من شما چرا چیزی که خدا حلال قرار داده حرام کردید پس پیامبران در تحلیل و تحریم یعنی در حل... حلال کردن و حرام کردن نقشی ندارند حلال و حرام به دست الله است وقتی که حلال و حرام را پیغمبر نمیتونه پس غیر پیغمبر چطور میتونه لذا وقتی که به این زن گفت حضرت خوله بنت سالبه وقتی که رسول الله گفت که من درباره تو چیزی نمیدانم مگر اینکه حرام هستی بر او این زن وقتی که از رسول الله ناامید شد گفت من شکایتم را پیش خدا میبرم و گفت خدایا تو به من رسیدگی بکن من الان کجا برم من جوانیم را با این مرد سپری کردم گذراندم. الان که پاپ سن گذاشتم الان اگر من بر او حرام بشم طلاق بشم در حالی که او کلمه طلاق نگفته من اگر بر او حرام بشم طلاق بشم کجا برم جایی ندارم کجا زندگی بکنم با کی زندگی بکنم چون هم شوهرش پشیمان بود هم این زن نمیخواست که از خانه شوهر بره لذا خدا را زاری کرد خدا را تضرو کرد خدای عزواجل هم برای او راه را گشود مشکل گشایی کرد خداوند تعالی فرج آورد خداوند تعالی حکمی جدید صادر فرمود خدا مختار کل هست همه چیز در دست الله است. بس انسان هر وقتی که گرفتاری مشکلی میشه چه مشکل شرعیه چه تکوینی غیر از خدا کسی را فریاد نزند غیر از خدا از کسی دیگه حاجت نتلبد به این خاطر این سور رسول مجادلہ میگویند که این زن جدل, جدل کرد این زن بحث کرد با رسول الله اللہ, اللہ میفرماید قد سمیع الله قول التي همانا شنید خداوند قول اون زنی را که آلتی تجادلک کفی زوجها آن زنی که با شما جدل میکرد با شما بحث کرد درباره همسرش و وقتی که از شما ناامید شد و تشتکی الله و شکایت کرد بسوی الله فریادش را شکایت را پیش خدا برد خدا وگرنه شکایت بندگان شاکی را می درد دردمندان را میداند، داند اما یجیب المختر اذا دعا کدوم ذات است که اجابت کند وقتی که مستر او را فریاد بزند مستر از او بخواد والله یسمع تحاورکما اللہ می شنید سخنان شما را گفتگوی فیما بین شما را بحثی که بین شما و بین اون سهابی جریان داشت، الله میشنید چرا؟ ان الله هستمیع بصر همانا الله هر قول را شنواست و هر, و هر عمل را است هر چیزی را خدا بیند لذا خدا میشنید که شما چه میگوید. لذا ابتداء قانون زهار را خدا بیان میفرماید. قانون اینه. ببین کسی که به زنش میگه تو مادر من هستی یا مثل مادر من هستی با این کلمه زن مادر نمیشه مادر او کسی هست که مرد را این فرد را به دنیا آورده که بر این حکم مشرکین اعتراض داشتن مشرکین میگفتن که این چه دستوری هست این چه شریعتی هست که کسی زن خودش را مادر قرار داده باز بعد از کفاره دوباره زنش میشه خدای عزوجل هم جواب داد که با زن را با مادر گفتن هیچ وقت مادر نمیشه مادر اون کسی است که انسان را به دنیا آورده انسان را متولد کرده لذا الله می فرماید این قانون اول الذین یظهرن من کم من نسائهم کسانی که زهر میکنن از شما زنهاشان را ماهون نامهاتیم از زنها نیستن مادرانیشان مادر واقعی نیست مادر کیه؟ این امهات هم اگر الله ولد نیست مادران آنها مگر اونهای که اونها رضایدند به دنیا آوردند دن اون کسی که به دنیا آورد، اون هست مادر. بس این سخنیش چیجایگای داره؟ این سخن سخن منکری، سخنی نادرستیه، سخنی است که نشار این را قبول میکنه، نعاقل همسر از زن هست تابحال با زندگی کرده، الان بگه مادر مادر میشه. و این نهُمَلَيَقُلُ نَمُنْكَرٌ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورَهَا همانا اینها میگویند. قول منکری قول نادرستی منکر یونکرو شرع و عقل هم از نظر شریعت منکر است هم از نظر عقل منکر است و هم از نظر تابع منکر است چطور زنه انسان بشه مادر پس و این هم لا یقولون منکرم من القول اینا کی انتر میگوینن اینا میگوینن قول منکری و زورا قول دروغی این دروغه که گفته و ان الله لغفور غفور این ترغیب برای جبران کردن است ترغیب برای تدارک است در یافتن است خدا میفرماید خداوند هم عفو کننده است و هم بخشاینده است پس شما در آینده تکرار نکنید خدا تعالی شما را میبخشد اما کفاره این اظهار چیه خداوند عزوجل دستور دادند که کسانی که این سخن منکر را گفتند این جمله ناروا را گفتند این جمله سنگین را گفتند اینها باید کار بکنند یک برده ای را آزاد بکنند به عنوان کفاره اما این برده که آزاد بشه قبل از اینکه نزدیک همسرش بره باید این کفاره را بپردازد به شوهر این خوله این صحابی رسول الله گفت که شما برو یه برده ای آزاد کن دستش را به گردنش گذاشت گفت یا رسول الله فقط این گردن مال من است من دیگه گردنی ندارم برده ای ندارم که آزادش کنم بعد آن حضرت صلی اللہ علیه حکم دوم را بهش اعلام کرد که برو دو ماه روزه بگیر دو ماه پیاپی روزه بگیر گفتی یا رسول الله من سه روز نمیتونم روزه بگیرم، دو دوما چطور میتونم روزه بگیرم بعد آن حضرت بهش گفت برو شست مسکین را غذا بده، طعام بده بازم چیزی نداشت گفت یا رسول الله من به اون صورت ندارم مگر اینکه شما کمکم کنید آن حضرت صلی الله علیه سلام کمکش کرد، کفاره را داد و بعد از اون خانمش براش حلال شد این کفاره ای که خدای عزوجل بیان فرمود و این راهکار است والذین یظاهرون من نسائهم کسانی که زهار میکنن با همسرانشان ثم یعودون لما قالوا سپس برمیگردند به اون چیزی که گفتند چطور برمیگردند یعنی میخوان اون جمله خودشون رو نقض بکنن بگن ما اشتباه کردیم ما اشتباه گفتیم خب اشتباه گفتی همین که به ماه اینکه که اشتباه گفتی دیگه معافی نه جمله سنگینی گفتی فتحیر رقبت من قبل اینی تماس ابتداعا آزاد کردن بردی قبل از که اینی تماس با او تماس تماس کنایه از جماع هست و دواعی جماع یعنی مقابتو هم خابی و, و مقدمه این هم براش ممنوع است. زالکم توعزون به الله می این مطلبی هست که شما موعزه میشوید. والله و الله به ما تعملون خبیر خداوند به اعمال شما خبر دارد از تمام اعمال شما اطلاع دارد اما اگر کسی نداشت غلامی برده یا مثل زمان ما زمان برده نیست اون وقت چی کار بکند؟ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ هر کسی نیافت روزه دو ماه پیاپی من قبل این یه تماث قبل از اینکه انها هم دو, هم دو هر دو با هم دیگه تماس داشته باشند یعنی با هم هم خوابی داشته باشند قبل از اما کسی سن به اندازه همسر این خوله بود که دو ماه روزه هم نمیتونست چون اینا پا بسن گذاشته بودند پیر شده بودند لذا فمن لم یستطیع کسی که نتوانست بسبب پیری کهولت سن فا اطعام ستین مسکین پس دادن شست مسکین این حکم سفوم هست ذالک لتؤمنوا بالله و خداوند این یسر را آورد این تخفیف را آورد این حکم آسان را چون قبلا برای همیشه زن برای حرام میشد در زمان جاهلیت اما خداوند این حکم آسان را برای شما مشروع فرمود تاکه لتؤمنوا بالله و رسوله تاکه به خدا و رسولش ایمان داشته باشید یعنی ایمانتون صادقانه باشه. اما برای اجرای این حکم خداوند تأکید می فرماید و تلک حدود الله این حد و مرز الهی هست احکام تمام حدود الله هستند همه مرزهای الهی هستند از این احکام نباید عدول کرد از این احکام نباید تعدی کرد ولی کافرین عذاب علیم برای کافرانی که منکر این موضوع هستند چون کفار مشرکین اعتراض کردن گفتن یعنی چی این چی دینیه که کسی را که مادرت قرار دادی او را برایت حلال میکنه اونایی که انکار میکنن دستورات خدا را شرع خدا را و فرمان خدا را برای اونها عذابه دردناک هست اما خدای عزوجل بعد از این این مسئله زهار بود عرض کردم این مقدمه بود اما اصل سوره درباره منافقین بود و اصل موضوع اصل جهاد بود اما چون که همیشه در امر جهاد منافقین بزرگترین مانه هستند بزرگترین مزاهم هستند نه خودشون جهاد میکردند نه مخلصین را میگذاشتند هی مزاحمت میکردند هی بد و بیراه میگفتند لذا خدای عزوجل از این به بعد عتابی میفرماید زجر و سرزنش به آن میفرماید برای منافقین منافق اولین علامتش اینه که مخالفت میکنه با احکام خدا و با احکام رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینید بند بنده بارها خدمت شما عرض کردم که ما وقتی که آیات را در رابطه با گروه های مختلف می‌خانی مثلا مشرکین می‌خانیم یهود می‌خانیم ذهن ما میره به 1400 سال پیش وقتی که بحث شرک و اهل شرک میشه فقط فکر می‌کنی فقط ابو جهل و ابو لهب و عتبا و شیبا هستند دیگه کسی نیست وقتی که بحث منافقین ذهن میره به طرف عبدالله ابن ابی و او نخیر ببینید صفاتی که بیان شده شرایطی که گفته شده این صفات امروز هم در بیان بسیاری از افراد هستند به قول شاه الله رحمه الله این حاکمان و پادشاهانی که یک سری قوانین وضع می کنند قانون اساسی درست می کنند و این قوانینشون مخالف قانون خدا و رسول هست گرچه نامش مسلمان یا مسلمان نیست این اعتقاداً منافقی نه عملا مثلاً خیلی ها هستن ما میگیم کسی دروغ میگه منافقی کسی واده خلافی میکنه منافقی خب این عملا نفاق است یک نفاق عملی داریم نفاق اعتقادی داریم اون کسی که نفاق اعتقادی دارد و مسلمان نیست ظاهرش مسلمان هست. لذا کسی که مثلا قانون وضع میکنه تو کشورش و در این قانونش میگه مثلا در اماکن عمومی حجاب ممنوعه زن نمیتونه با روسری بیاد تو دانشگاه تحصیل بکنه و از این قانون حمایت میکنه به عنوان نماینده مجلس و نماینده قشر مسلمان به عنوان رئیس جمهور مسلمان به عنوان نخست وزیر مسلمان دستوری و قانونی را میخواد پاس بکنه و اجرا بکنه که این قانون خلاف قانون خداس، خلاف قانون رسول الله، خلاف قرآن هست. این منافق در نفاقشی شک نکن. لذا ببین خداوند عزّ و جل چی صفاتی برای منافق بهم میفرماید؟ اینالذین يوحادون الله و رسول همانا انهایی که مخالفت میکنن با خدا و رسول مخالفت در چیه؟ در احکام هست در دستورات هست کبیتو کما کبیتالذین من قبلهیم کبیتو معنیش اینه که سرنگون میشوند شکست میخورند واجگون میشوند همانگونه که سرنگون شدن قب... کسانی که قبل از اینها بودن یعنی مشرکین در بدر در احزاب در معرکه های مختلف وقد انزلنا آیات بینات الله می فرماید ما آیات روشن و آیات واضح برای شما نازل کردیم که این آیات آیات ما هستن احکام ما هستن دستورات ما هستن انهای که اینها را انکار میکنن کافرند کافرند وللکافرین عذاب مهین برای کافران عذاب زلت بار است خداوند و جل خار و زبون می فرماید يوم يبعثهم الله ان ظرف این زمان عذاب است که خدا عذابشون میده يوم يبعثهم الله جميعا فينبههم بما عملو روزی که الله हमे مبعوث میفرماید हमे از قبرها ها بلند میفرماید فينبههم بما عملو خبر میده که شما چیکار کردید در دنیا ببین وقتی که خداوند اینها را حشر می کند اونها فکر میکنند که خیلی از مسائل اونها مخفی مونده خدا خبر نداره در حالی که احصاه الله خدا همه را احاطه کرده همه را ثبت و ضبط کرده همه را نوشته و نسو خودشون فراموششون کردن خودش فراموش کرده که من چه جرمی کردم چه جنایتی کرده اما خدا توسط فرشتگان همه را نوشته و علی کل شیء شئین شهید خداوند بر هر چیزی حاضر و ناظر است لذا منافقین بزرگترین کارشون بزرگترین مسئله اساسیش اساسیشون مخالفت خدا و رسول خدا بود که خداوند میفرماید اینها بدبخت میشن اینها سرنگون میشن اینها به هلاکت و فلاکت گرفتار میشن که مخالفت میکنن و مسئله دیگری که مخالف منافقین داشتند همیشه بر علیه مسلمانان با هم دیگه جلسه خصوصی داشتند پشت درهای بسته با هم دیگه مشوره داشتند الان هم هستن خیلی از منافقین که همیشه توطئه میکنن بر علیه مسلمانان بر علیه اهل حق بر علیه اهل دین تو جلسات خصوصیشون تو جلسات سریشون گاهی بعضی از این جلسات اخبارشون درز میکنه بی بیرون که جلوی فلان نهضت دینی را چطور بگیرند جلوی فلان فعالیت دینی را چطور بگیرند فلان عالم را چطور ترور بکنند لذا همه این برنامه ها فکر میکنن کسی خبر نداره الله خبر داره و الله عز و جل هم جلوگیری میفرماید مگر اینکه فیصله خدا چیزی دیگه باشد لذا الله می فرماید دو نفرن سومیشون خدا چهار تا هستن پنجمی خدا است. فکر نکنه خدا بی‌خبری چون بعضی از منافقین می‌دیدن که لو میرند با خودشون میگفتن اگر ما علنی با هم صحبت میکنیم خبر را به محمد میرسانیم بریم خصوصی صحبت کنیم اونجا کسی خبر را نمی تونه برسانه اللہ می فرماید الم ترا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ايا نميدانی انزجر برائے منافقین ایا نمیدانی ہم اللہ میدانت ما في السماوات وما في الْأَرْضِ تمام ان در آسمان ہے اور در زمین هس. تمام اخبار واخبار ما يكون من نجوا بيان معيّة كامل الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم نيس سرقوشي و جلسه سنفر إلا هو رابعهم مگر الله چارمين شانهاز ولا خمسة ونّا پنج نفر باهم من شينان إلا هو سادسهم مگر الله ششمين شانهاز ولا أدنى من ذلك والنكم ترزين تعداد ولا اکثر و نبیش تعداد الا هو معهم مگر الله با انهاست اینما کانو هر جا باشند هر جا باشند خدا هست خدا می خدا می فرشتگان الهی منویسند ثبت می کنند ثبت می کنند گرفته میشه فیلم های ای که از سوی پروردگار هست اون فیلم ها همه چیز را ثبت و ضبط میکنه ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامة سپس خدا خبرشون میده اون چه که عمل کردن در روز قیامت خدا برای هم میفرماید ان الله بكل شیء علیم این علت است چون خداوند عز و جل به هر چیز عالم است به هر چیز آگاه است و از هر مسئله‌ای خبر دارد و بعد خداوند عز و جل دستور دادند که شما از این به بعد اجازه نداری با هم دیگه این نوع سرگوشی ها داشته باشید جلسات خصوصی داشته باشید اصلش اینها سرگوشی و توتیع داشتند در زمینه اسم و معصیت و مخالفت کتاب و سنت مخالفت خدا و رسول یه وقتی فکر نکنید که مطلقا جلسه خصوصی ممنوع نه خیلی از افراد هستند که جلسات خصوصی دارن حرف خصوصی دارن با هم، با هم دیگه. مثلا یه موضوع خانوادگی هست با هم چند نفر توی اتاقی تنها منشینند یه اصلی یه موضوعی هست در زمینه دین دینی یه فعالیت دینی هست یه فعالیت تبلیغی هست یه فعالیت ایمانی هست لذا نیاز هست که این حرف درز نکند به دشمن نرسد که وقت جلوگیری نکند با هم به صورت خصوصی بشینیم لذا این جلسات ممنونیست جلسات خصوصی ممنوع ممنونیست اونهای ممنوع است که در راستای گناه و معصیت باشد در راستای مخالفت الله و رسول باشد الم تر الالذین نهو عن النجوه آیا دیدی انهایی را که باز داشته شدن از جلسات خصوصی نجوا، اینجا الفلام عهد خارجی است مطلقا اون جلسات خاص مراد است ثم يعودون لما نهوا سپس اینها دوباره عود میکنن انجام میدن اون چیزی را که باز داشته شدن از آن و يتناجون بالاثم والعدوان و عصيه الرسول در راستای چی هست در زمین چی هست این نجوایشان این جلساتشان با هم دیگه مشوره می با هم دیگه سرگوشی می بل بالاسم بگونا، در راستای گنا والعدوان و تعدی تجاوز و معصیت الرسول و معصیت پیغمبر بعضی ها از همین منافقین در سفرهای جهادی که می رفتند با هم دیگه صحبت می کردند و اشاره به مسلمانان می کردند مثلا پنش شش نفر بودند یک جای، یک مسلمانی قافل بود، کاروان بود، یکی صد متر جلوتر، یکی صد متر عقبتر یکی را که تنها می دیدن به او اشاره می کردن، می خندیدند. اون دلش آزرده می شد، یا یعنی اینکه احساس خطر می کرد که اینا چه نقشه بر علیه من دارند، لذا خدای تعالی فرمود که این نو سرگوشی ها نکنید، بعضی افراد مریضند واقعا، منافق هم مریض خدا فرمای فی قلوبهم مرض، دلشون مرض داره که این ک لذا خوشیشون در این بود که کسی را برنجانند خاطر کسی را مکدر بکنند کسی را پریشان بکنند حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم را وقتی که خدمت رسول الله می آمدند همین منافقین یهودی که یهودی الاصل بودند می آمدند خدمت رسول الله و توری سلام می گفتند که سلامی نبود در واقع دعای بدی بود مثلا بجای السلام علیکم میگفتند اسام علیکم سام به معنای موت هست مرگ بر تو خب گاهی که چنین میگفتن یه یه باری که ام المومنین عایشه رضی الله عنها تشریف داشتند عایشه شنید که این چی داره میگه عایشه احساساتی شد عایشه بسیاری از دعاهای بد و بد و بیرا به اون طرف گفت که بر تو، بر پدرت و تو، بر جدت و همه،, همه کار خودت هستی آن حضرت فرمو عایشه ناراحت نباش احساساتی نباش گفتی یا رسول الله نشنیدی چی گفت؟ گفت بله من شنیدم اون گفت السلام علیکم منم گفتم و علیکم یعنی هر چی به من گفتی بر خودت به خودش بر میگرده لذا می آمدن رسول الله را چنین سلام میگفتن، چینین خوش آمد میگفتن، خیلی از افراد مریضند، یه بالاخره به یک فردی، به یک کسی، به یک انسان بری، به یک انسانی که کار نداره به کارش، یک تکیم میندازه بعد تو دلش خوشه که من به این بد گفتم اینا متوجه نشد، او که متوجه نشد ولی خدا متوجه شد، لذا اینها این انسفات صفات منافقینه، این صفات صفات, صفات, صفات کسانی است که دلشون ماریه دارویشون مشکل داره. الله می‌فرماید و وی تناجون بالئثم و العدوان و الرسول با هم دیگه سرگوشی میکنن در راستای گناه و تعدی و نفرمانی رسول و اداج او که حی او شما هرگا پیشش میایند تحیه میگویند سلام میگویند به شما به معلم به که بهلا به اون کلماتی که خدا به شما شمار سلام نگفته السلام علیک ایوه النبی باید گفت ولی این غیر از اون میگویند و بعد این غد احمق بودن اونا فکر میکردن اولین اشتباه را بکنند خدا باید مواجهشون بکنه خیلی از مردم که گرفتار گناه و معصیتند همین حماقت را دارند بعضی وقتا با خودشون میگه خب اگه این کاری که من میکنم کار خلافه چرا خدا منو نمیگیره؟ خداوند از و قرار نیست تو این دنیا بگیره این دنیا دار مکافات نیست اولا این دنیا دار امتحانه هر کسی از پشرا می دواند بی دوانت. در هر مسیر چه در مسیر خیر چه در مسیر شر و گناه قرار نیسته که فوراً خدا مؤاخذهش بکنه چرا بعضی وقتها بعضی مجرمین را که به اوج سرکشی میرسن خدا میزنه اما اونها منافقین میآمدن نسبت به رسول الله توهین میکردن می بعد با خودشون میگفتن خب اگه این پیغمبری خداست چرا خدا ما را عذاب نمیده اولا خدا میفرماید که عذاب اصلی کفایتت بی کنه حسب هم جهنم جهنم کافیشون است اصلش از دارالعذاب، العذاب دار اخرت آخرت است دنیا نیست لذا این نکتر شما حتما در ذهن داشته باشید که حتما و لازما خداوند گناهکاران را فاسقان را فاجران را مشرکان را کافران را در همین دنیا مواخذه بکنن نه خیرین لازم نیست اون منافقانی اون کفار که مواخذش شدن تکتوک بودند همه نبودند فرعون بود مثلا حامان بود قوم لوت بود قوم نوح بود اونهایی که به اوج سرکشی رسیدن اون هم یک یک نمونه خدای تعالی برای بقیه انسانها گذاشت و ایلا لازم نیسته که حتما تو دنیا معاخذی صورت بگیرد اون چه که ما از قرآن میفهمیم اینه که جای معاخذی چرا گاگای خدا گوشمالی می دهی ولی جای مأخذ اصلی دنیا نیست. لذا آنها وقتی که بر رسول الله چنین توهین و بی ادبی می کردند، یقولون فی انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. آنها در دلشون می گفتند، در دلشون می گفتند یا یعنی اینکه فی انفسهم با خودشون می گفتند. ای قولون في ما بینهم فی ما بینشون می گفتند. که لو کان نبیا الله بما نقول اگر واقعا این نبی بود خداوند با این گفته ما را عذاب میکرد ما را عذاب میکرد ما را عذاب میداد چرا خدا عذابمون نداد معلوم میشه که نبی نیست بعضی هم همین رو میگم معلوم میشه که این فرد فرد درستی یا فردی که در مسیر حق باشه نیست که ما این را اذیت کردیم هیچ چیمون نشد نه اولا الله می حسبهم جهنم کفایت می کندی جهنم یسلونها وارد اون جهنم میشن شند فبئس المصیر مرجع بسیار بدی هست وقتی که اونجا برن جای رجوع بدی هست یا ایها الذين امنوا ان خدای عز وجل قانون قانون برای اصلاح بیان میفرمایند که هرگاه با هم دیگه سرگوشی میکنید سرگوشی در صورتی درسته که درست درست در راستای بر و باشد اما در راستای گناه و معصیت باشد برای شما ممنوع است یا ایها الذين امنوا ای مؤمنان اذا تناجيتم هرگا شما با هم دیگر تناجی داشتید سرگوشی داشتید حرف خصوصی داشتید فلا تتناجو بالعثم والعدوان جلسه خصوصی و سرگوشی داشت نباشید در راستای گناه و تعدی و معصیت الرسول و در راسته نافرمانی رسول و تناجو بالبر والتقوی و باهم هم دیگه تناجی داشته باشید سرگوشی داشته باشید در راستای نیکی و تقوی خیر رسوندم به مردم نفر رسوندم به مردم امر به معروف از منکر تعلیم و تعلم و همچنین در راستای تقوی و خدا ترسی مثلا چند نفر با هم بشینند صورت خصوصی بحث کنند که چکار بکنیم این جوان ها از بینمازی بیام بیرون، از میخاری و شرابخاری فاصله بگیرند، از دود و از کنم کشیدن دود فاصله بگیرند، خب در این راسته، این در راسته چی هست؟ بر رو تقوی است، اما خدای عزو جل نسخه عمل را، اون نسخه که انسان را تقویت می کند، و نسخه که انسان را کمک می کند، نسخره بم میفرمد و تقلله الذي الیهی تحشرون از خدا بترسید، از خدا پروها داشته باشید اون خدای که به سوی او فقط شما حشر میشید وقتی که انسان یقین و باور داشته باشد که به سو خدا این نسخه تخوااست به سوی خدا حشر میشه جمع میشه قطعا خوف خدا در وجودش میاد. و این نو نجواها را خدا می فرماید این نو سرگوشیها و این نو جلسات خاص در واقع سوی شیطان هدایت شده این نو نجوا من الشیطان همانا این نو نجواها این نو جلسات خصوصی از جانب شیطان هست شیطان میخواد چکار کنه. لی احزن الذین آمنو تاک غمگین و حزین کند مؤمنین را شما را با هم معدار میکنه با هم سه نفر حرف بزنید به طرف یکی اشاره بکنید به همین دلیل گفتند علماء که در محلی که سه نفر باشند دو نفر اجازه ندارن جایز نیست با هم دیگه خصوصی داشته باشند اون یک نفر فکر میکنه که دارم بر علیه من یک نقشه توطئه دارم اون پریشان میشه همین پریشانی سبب شده که نباید در حضور یک نفر ما هم دیگه جلسه خصوصی داشت انما النجوى من الشیطان هدف شیطان چیه لاحزنا الذین آمنو تا که حزین بکنه کسانی را که ایمان آوردند اما این نجوا و این جلسات اچ نه نتیجه هم نداره زرری نمی رسانند و لیسه بضارهم شیئن ایلا با اذنی اللہ و نیستن زرر دهنده انها صحابه را چیزی مگر با اذنی اللہ لیسه صحابه هم نارات نباشند اگر برالی انها صحبت میکنند به طرف اشاره میکنند و علاللہ فلیتوکلی المؤمنون فقط و فقط الله بایت توکل کنند احل ایمان خب این قانون اول بود که به منافقین گفته شد شما حق ندارید از این بعد با هم جلسات داشته باشید مجاہدین را مخلصین را صحابه را پریشان بکنید اونا را ناراحت بکنید یا ایوها الذین آمنوا این قانون دوم هست قانون مجلس نشستن در مجلس خصوص وقتی که جا تنگ هست شما را وقتی که گفته میشه که جا باز کنید برای بزرگان شما دیگه جا باز کنید شما یک تکان خوردن دروغی و مسخری داشته نباشید اصلش اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی تشریف می بردن پیش اصحاب صفح اصحاب صفه می دونی به کپر می گویند کپر ایک کپری درست کرده بودن کنار مسجد النبی و بسیاری از فقراء و صحابه بی بزاعت انجا برای تحصیل علم آمده بودند صفح اولی مدرسه دینی هست مدرسه النبی هست صلی عليه و وسلم کہ صحابه و تشنگان علوم نبوت انجا جمع شده بودند با یک فقر و فاقی عجیبی گاهی از گرسنگی ابو حریر جزی انهاست ابو حریر میگه گاهی ما از گرسنگی از حال میافتادیم قش می کردیم مردم میعملد نمیدونستند. گینا گرسنهن کسی آمد من افتاده بودم و چشمان وسته بودن حال نداشتم بلند بشم ولی صداها رو میشنیددن یکی گفت حتما این دیوانه شده جن زده من از گرسنگگی افتاده بودم. لذا اصحاب حصفه یک کپری کوچکی داشتند داشتن رسول الله سرله اونجا میرفت و چیزهایی به اونها یاد میداد دین را به اونها یاد میداد قرآن را. گاهی کجا تشریف می‌بردن منافقین هم می‌آمدند می‌نشستند یه روز آن حضرت رفتند و جا تنگ بود بعضی از صحابه صحابه بدری کسانی که در جنگ بدر شرکت کرده بودند اینها آمدند اینها آمدند دم در دیدند که جا نیست خب گفته شد که تفسحوا یعنی یه مقدار جمع‌تر بشینید جا باز کنید این منافقین به صورت مسخره یک تکانی خوردند و بیشتر جا را گرفتند که اونها جا نشند اونها نتونن بنشینند لذا اولین ادب اینه که وقتی گفته میشه و جا باز کنی واقعا خودتون را جام کنید اگر چهارزانو نشستید دو زانو بشینید یک زانو بشینید تا که بالاخره جای دو نفر را گرفتید این جای یک نفر مال شما باشه یک نفری دیگه خالی بشه ده نفر وقتی این کار را بکنند ده تا میشه پس این حکم اول و بعد آن حضرت دیدن که اینها تکان نخوردند جایی باز نشد چند نفر را دستور دادند که شما بلند شید. چند نفر صحابه بودند صحابه رتبه پایین اینا بلند بشند اونا بیان بشینند اینا بلند شدند اونا نشستند منافقین به اینها نگاه میکردند به هم دیگه نگاه میکردند و تمسخور میکردند میخندیدند لذا این آیات درباره باره انها نازل شد یا ایوها الذين آمنوا ای مؤمنان اذا قيل لكم تفسحو هر گاب شما گفته شد تفسحو جا باز کنید فی المجالس در مجالس ففسحو جا باز کنید گاهی الان این آیات مخصوصی اون زمان نیست الان گاهی جلساتی گرفت میشه چه جلسات مهمانی هست جلسه سفره هست چه جلسه دینی در مسجد هست گای حجوم زیاد جاہ نیست یک شخصیتی میاد یک انسانی میاد یک عالم وارسته میاد یک ریشتفید و معتمید میاد لذاب چهار تا جوان که نشستن باید جا باز کنن. باید بلند بشن این جز آداب است بلند بشن ادب باشد احترام باشد محبت باشد ایثار بفرما شما بشین اینجا لذا به این صورت باید باشد اما متاسفانه در میان ما هم ادب ضعیف بعضی جوان ها با خودشون فکر میکنه من اول آمدم این آقای ریش سفید این آجی آقای بزرگ این محتمید این سردار دیر آمده یا این عالم دیر آمده همونجا بشینه حقی اونجا هست حق من اینجا هست لذا این خلاف ادب است ببینی قرآن چی میگه و اذا قیلن شزو فن شزو هرگاه گفته میشه برقیز بلند شو بلند شید سلسل مراتبی هست کی گفته که مراتب نیست تفاوت نیست تفاوت هست انزل الناس منازل هم هر یکی از مردم را به جایگاهشون قرار بدید الله تعالی می فرماید یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتو العلم درجات خداوند عز و جل و بلند و بالا می فرماید کسانی رکی ایمان آوردن از شما نسبت بمنافقین یعنی اون مومن مخلص نسبت بمنافق جایگاه دارد، عزت دارد والذین اوتو العلم و اون کسانی که علم داد شدند اهل علم هستند درجات خداوند از نظر مقام از نظر مرتبه درجاتی به اونها را بالاتر قرار می‌دهد همونطور که درجاتی اونها بالاتر است لذا در مجلس هم با جایگاهشون عزتشون بالاتر باشد بعضی هم که از ادب محروم هستن میگه چه فرق میکنه اونم انسان اینم انسانه بعضی وقتا مردم همین میگه میگه چرا تبعیض اونم انسانه اینم انسانه نه. عدبی گفتن احترام این را قرآن دستور میده که کسانی که اهل علم هستن اصحابه کسانی که جز بزرگان هستند، ابو بکر عمر عثمان علی اینا درجاتی دارن اینا مراتب بالایی دارن اینا نیسته که بگیم حقشون از هر جا شدن والله بما تعملون خبیر و خداوند نسبت به اون چی که شما عمل میکنید خبر دارد. لذا کسانی که غرض ورز باشند غرض داشته باشند خدا اونها را میداند یا ایها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه این قانون سهم هست یکی از اشکالات منافقین و از امراض منافقین این بود که سعی می‌کردند وقت رسول الله را بی جهت بگیرند چنان وقتی آن حضرت را می‌گرفتند که کسی دیگه نتونه خوب استفاده بکنه چنان می‌گرفتند که کسی دیگه نتونه استفاده بکنه بعضی از صحابه مخلصین بودند تشنه علم بودند تشنه نصیحت رسول الله بودند از دور دراز آمده که اینجا از مجلس رسول الله بهره بشه این منافقی میخواست از کردم دلشون مرز داشت فقط میخواستن که مشکل ایجاد کنن لذا بعضی وقتا یکی از اینها کسی از اینها میامند یا رسول الله من حرف خصوصی دارم تا دیر وقت وقت رسول الله را میگرفت رسول الله هم رو دربایستی داشتن چیزی نمیفرمودند لذا وقت مسلمان زایه شد. مسلمانان نمیتوانست استفاده بکنن. خدای عزواجل یه راهکار خوبی بیان فرمودند خدا فرمود که از این به بعد هر کسی وقت خاص میخواد باید قبل از اینکه وقت بگیره صدقه بده در رای خدا پولی بده خب منافق یکی از بارزترین اوصافشم است دیگه اینکه گفته شد که صدقه بده این به منزل موت بود برای منافقین بعد از اون دیگه هیچ کسی کار خصوصی نداشت هیچ کسی بلاخره به صورت خاص کاری نداشت همه میگفتن نه ما همینطور میشینیم استفاده میکنیم اما بعضی از در همین آیه تخفیف هم آمده که اگر کسی نداشت خب خداوند غفور و رحیم است یعنی کسی بی بزاعت بود بعضی از مسلمانان واقعی بی بزاعت بودن کار هم داشتن کار به صورت خصوصی داشتند. اونها پریشان شدند که آیا ما جز این استثناء هستیم یا نیستیم آیه بعد خدای تعالی این حکم را چی کردند؟ این حکم را سبکتر فرمودند و این حکم را منسوخ کردند و فرمودند که شما از این به بعد خب صدقه ندهید ولی شما رعایت بکنید يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان اذا ناجیتم الرسول هرگا شما سرگوشی داشتید با رسول حرف خصوصی داشتید با رسول فقدمو بين یدین نجواكم صدقة تقديم کنید قبل از نجوائتان قبل از حرف خصوصیتان صدقی ذالک خیر لكم و اطهر این بہترست برای شما بیعتبار سواب و اطهر و باعث پاکیزگی بیشتری هست فا لم تجدو اگر نیافتید یعنی اگر مال نداشتید فا الله غفور الرحیم همانا خداوند بخشنده و مهربان است البته شیخ رحمه الله می چون که شیخ قائل به نسخه آیات نیستند معتقدند که این این حکم حکم استحبابی بود این دستور دستوری چی بود استحبابی دلیلش هم همینه که در پایان همین فرموده اگر نداشتی خداوند غفور و رحیم پس معلوم میشه واجب نبود اگر واجب بود حتما باید پرداخت می‌کردم بعد خداوند عزوجل به منافقین خطاب کرد اشفقتم من تقدموا بین يدينا جواکم صدقات آیا شما ترسیدید که قبل از نجواي خودتان، قبل از صحبت خصوصی خودتون صدقات تقدیم کنید؟ خب اگر صدقی نمی دهید ندهید. فايدا لم تفعلو اگر نکردید این کار را یعنی لم تفعلو فایل صدقات صدقی ندادید. وطاب الله علیکم خدا بر شما رجوع کرد یعنی واقعا میخواید که به خدا برگردی توبه میکنید تا خدا هم به شما رجوع کند پس جایگزین صدقات انکار حراب بکنید، فاقیم السلاة نماز را برپا بدارید و آت و زکات زکاة, زکاة بدید اون دیگه استعبابی نیست اون فرض اون را باید بدید و اطیع الله و به صورت عام در هر کاری خدا و رسول را اطاعت بکنید و بعد ترغیب به اخلاص میده ببینید اگر شما ریاکارانه و منافقانه انجام بدی خدا میدوند والله خبیر بما تعملون خداوند خبر دارد به اعمال شما اون که شما عمل میکنید لزمه برای خدا باشید الم ترى الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم اینجا باز هم زجر و تخویف اخروی است برای منافقین این منافقین همون منافقین چون قبلا من خدمت شما عرض کردم منافقین دو گروه بودند یک گروهی که در تردید بودند در شک بودند نمی‌دونسته این طرف برن اون طرف برند گاهی شرایط مسلمانان خوب بود این طرف می‌آمدن گاهی خوب نبود اون طرف می‌رفتند اما یک گروه در هر حال دشمن بودند اینا آماده بودند که ضربه بزنند اینها با یهودی ها دوست بودند از آخوندهای یهود خط می گرفتند و نقشه های اونها را اجرا می کردند اینجا خدای تعالی برای این گروه زجر و سرزنش بیان می و تخویف اخروی برای اینها هست الله می اینها بعضی وقتا وقتی که روی اینها شک می شد سوگند یاد می کردند. قسم به خدا ما خیرخواهیم، ما صادقیم ما مخلصیم یکی از علائم منافق همین چرب زبانی و سوگند جلالش هس خطرناکه هایی که میخور هر کسی باور میکنه. الله میفرماد الامتراء إِلَّا الَّذِينَ آیا دیدی کسانی را که تولّوا قومان دوستی کردن با قومی که غضب الله عليهم با آن قومی که خدا بر آنها غضب کرده کدوم قوم از که خدا بر آنها غضب کرده مغضوب عليهم کیا هستند؟ يهود هستن بس هم منافقين با كي دوستن با يهود وازنها ختمي گيرن اما ما هم منكم ولا منهم اين منافقين نأس شما هستن شما دلتون رخوش نكونید كي نأجوز ما هستن ونازن يهود هستن در وسط مزبزبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ويحلفون على الكذب وهم يعلمون اینا بر دروغ قسم میخورند در اون ادعای اسلامشون بر دروغ سوگند میخورند و هم علمو میدانند. عد الله لهم عذابا شدید این تخویف اخروی هست الله تعالی مهیا فرموده آماده کرده برای اونها عذاب شدید انهم سا ما كانوا یعملون دلیلش چیه چون همانا اینا بسیار بد عمل کردند اونچه که عمل میکنن بسیار بد هست اتخذو ايمانهم جنتا فصدو عن سبيل الله گاهی که بینها مشکوک می شدند و اینها را مواخذه می کردند سوگندی می خوردند که اون سوگند را برای خودشون سپر بلاغ قرار داده بودند دیگه سوگند می ما مارا نجات میده اینا سوگند می خورند گرفتند سوگندهای خودشون را قسمهای خودشون را جنتا جنتا یعنی سپر برای حفاظت جان و مالشون فصدوا عن سبيل الله پس از راه خدا دیگران را باز داشتند با همین سوگندها فلهم عذاب مهین برای اینها عذاب در ذلت ابار است عذاب ذلت آور است یه چیزی خدمت شما عرض کنم که امکان در هم در دنیا و هم در آخرت عذاب و گرفت و مؤاخذه خدا بیاد هم برای مؤمن میاد هم برای منافق برای کافر که جای خودش کافر و منافق حکم شکی هست اما برای مؤمن عذاب چی هست پاک کننده هست کفاره هست یعنی مشکلی برش میاد حادثه برش اتفاق میفته این حادثه و مشکل او را پاک میکند هیچ وقت عذاب مسلمان محین نیست زلیلش نمیکنه، خارش نمی کنه. اما عذاب منافق چیئے محین است یعنی رسوایش میکنه، کنے، آبروش را می و خار و زبونش میکنه. به بین خاطر بیشتر برای منافقین و کفار عذاب محین بکار برده شده لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیع آیا وقتی که عذابیات اینا نمیتونن کاری بکنن خب اینا سرمایه دارن اینها پارتی دارن اینها گروهی دارن حامی دارن الله میفرمه هیچ جلوی عذاب را نمیگیرن لنتقنی هم وقت آمدن عذاب هرگز دف نمیکند از آنان مالهایشان و نا اولادشان من الله شیئا یعنی از عذاب خدا هیچ چیزی اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون اینها اهل آتش هستن اصحاب نار هستن همیشه در آتش میمانند. خب این عذاب کی هست خداوند از زوجل می فرماید عذاب بعد از زنده شدن هست بعد از حشر هست بعد از بعث بعد الموت هست اونجا وقتی که خداوند منافقین را زنده بکند و قرار از اینها عذاب داده بشوند و اینا مواخذه می که چرا شما در دنیا این کار را می کردید خداون می این عادتشون و این مرضشون از بین نمی ره همون طور که برای شما ای رسول الله در دنیا سوگند می خوردند اونجا برای خدا هم سوگند می خورند فکر میکنن خدا خبر نداره یعنی این علت و عادت برای شون می مانه یوم یبعثهم الله جمیعا روزی که الله تعالی حامی بلند میکند از قبرها فیحلفون له کما یحلفون لكم سوگند میخورن برای خدا همان گونی که سوگند میخورن برای شما و یحسبون انهم علاشی این حماقتشون است اونها فکر میکنن که انهم علاشی شیء انها با این سوگند بر چیزی هستند یعنی این سوگند اونها را نجات میده الا انهم هم الكاذبون الله می فرماید خبردار این منافقان هم الكاذبون فقط انها سن دروغ بیا. اینا دروغ میگند هرچی چی قسم می خورند خداوند عزوجل دروغشان را ظاهر می فرماید استحوذ عليهم الشیطان این علت تمام اوصاف مذکور است چرا این اوصاف را دارند چرا این مشکلات را دارند دلیلش اینه که شیطان بر گردنشو مسلط شده استحواز تسلط شیطان را میگویند غلبه شیطان را میگویند چونکه اینها خیلی ضعیف عمل کردن در مقابل شیطان لذا شیطان بر اینها مسلط شده استحوذ علیهم الشیطان غالب شده مسلط شده بر آنان شیطان فانساهم ذکر الله از الذکر و یاد الله غافل کرد به فراموشی برد غافل کرد این نتیجه تسلط شیطان شیطان بر هر گردنی سوار بشه او را از یاد خدا چی میکنه غافل میکنه و حال الله عز وجل را چی میفرمايت اینها در واقع گروه شیطانند، لشکر شیطانند، حزب شیطانند. اولای که حزب شیطان، اینها حزب شیطان است. ببین حزب شیطان پس کیه منافقی؟ حزب شیطان اون منافقی هست که به ظاهر خودش را مسلمان جلوه می دے. اما با برنامه ریزی های خودش چیکار می کنه جلوی فعالیتهای دینی را جلوی پیشرفت دین را میگیره گی رہے حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون این سرانجام حزب الشیطان الله می آگاه باش خبردار همانا حزب الشیطان هم الخاسرون انها هستن زیان به اعتبار انجام امکان داره در این دنیا مقدار موفق بشه اما نتیجتا عاقبتا به اعتبار انجام خاسر هستن ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الذلله این علت است علت هست عرض به خدمت شما و که چرا این همه خساره این همه بدبختی این همه تسلط شیطان چون اینا مخالفت کردند با خدا و رسول ابتدای سوره هم خاندی لذا اینجا نتیجه را هم خدا بیان می‌فرماید ان الذين يحادون الله ورسوله همان کسانی که مخالفت کردند با الله و رسولش اولئک فلاذلین این گروه جوزه ازلین هستند یعنی رسواترین مردم هستند خارترین و ترین مردم هستند و خدای عزواجل هم اینو نوشته که من خدا و انبیاء من بر این منافقان بر این توتعگران غالب میشیم پیروز میشیم کتب الله کتب الله کجا خدا نوشته؟ تفسیر روحانی می‌فرماد، آثبت فی الله المحفوظ در الله محفوظ خدا اینه نوشته که لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي حتما حتما به اعتبار انجام، به اعتبار نتیجه من و رسولم غالب میشیم و اینها شکست خورن. ان الله قوي عزيز، این علت غالب است یوم خدا مند هم قوي هست قدرت است و هم غالب است دشمنان را شکست شکاسمیده. خب ببینید تا اینجا اوصاف منافقین بود در پایان سوره اوصاف مؤمنین و مخلصین یا صحابه رسول اللہ است دقت داشته باشید که تو عرف الاشیاء و به ازدادها هر چیزی با زد شناخت میشه شما سردی را بود زمانی میدونی سردی یعنی چه که گرمی را ببینید و بدانید. سفیدی را زمان می دونی که سیاهی را ببینی لذا اینجا بحث منافقین آمد بعض از منافقین ازداد انها یعنی مؤمنین مخلصین صحابه اونها ذکر می شوند اللہ عزوجل می فرماید که اولین علامت مؤمن واقعی اونی که به خدا ایمان دارد به رسول ایمان دارد اینه که هیچ وقت با دشمنان خدا دوست نمیشه. با دشمنان خدا دوست این آیه واقعا تکان دهنده هست خیلی از مسلمانان هستند که خودشون را مومن می دانند اما با دشمنان خدا دوستند با کفار با یهود با نصارا با اهل شرک چنان دوستی هستند قبلا بنده ارز کردم بعضی از دوست دوستی ها هست که گنجاشش هست در حد مدارات اما بعضی از دوستی ها هستند که هیچ گنجایشی برای اونها نیست اون دوستی کدومه همونی که قلبم باش دوست. چنان سمیمیت دارن بعضی از مسلمانان با کفار که رفت و آمد خانوادگی دارند زن و بچهشون شون را میبرند خونه اونها زن و بچه که خام هست و بچه قطعا تاثیر می گیرد از فرهنگ کفر، از فرهنگ بی از فرهنگ بی حجابی زود اثر می پذیرد. ببینید شما امروز که وارد خانه های ما شدند، فرهنگ های اونا از طریق تلویزیون وارد خانه شدند. بسیاری از مسلمانان هستند که زنو بچه شون همیشه هیچ قید و بندی نیست فیلم ها را نگاه می کنند، فیلم های خارجی ها را نگاه می کنند. می بینیم که این فیلم ها چنان تأثری ایجاد کرده در خانواده ها که همون بیهجابی را دوست دارند همون مدل لباس را دوست دارند همون حرکات را دوست دارند همون از کنم که ناز و کرشمه را به اسطلاح دوست دارند اینم مثل اون را دوست دارند دختر مسلمان اصلا خودش را مثلا در میاره بشکل هندی ها چون هندی ها را دیده خوشش میاد. بسیاری از رسومات ما الان کم کم اروسی ها نمی نم جشن های تولد کم کم به اون سمت سو میرند جو اونی مسلمان خامه مسلمان بیدانشه وقتی که نگاه میکند همون حرکات همون حرکات را میپسندند و بعضی ها هم همون ادای احترام ها یک نوع احترام های ها ادائی احترام ها مخصوصی اونها همون را داره احیام میکند لذا پس این نو موالات این نو دوستی تا این انداز دوستی که بیاریم انها را داخل خانه مون و ما بریم وارد خانه انها بشیم فردا بلاخره بچش را هم همون نام را رو بچش میذاره خیلی هستند کہ افرادی هستند اسم بچهاش را گذاشتن می این اسم اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے اسلم ایک ہندی گزاشتیں چه انتظاری داری که بچه هم نام با یک هندو میذاری و بعد این نام در این چی داشته باشد تاثیر داشته این بچه صالح بشه خوب بشه لذا مسلمان با همین موالات چون خام هست و با همین دوستی ها کم کم فرهنگش را دینش را مذهبش را و بسیاری از ارزشهایش را از دست میده بنابراین خداوند اولین صفت مؤمن را بیان می‌فرماید مؤمن واقعی که با دشمنان من دوست نیست و نمی‌شه لا تجد قوما لم يبن را که مؤمنون بالله و اليوم الاخر ایمان بیاورم به خدا و, و روز آخرت به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشد و یوادون من حاد الله و رسول و دوست به شبا کسی که دشمن خدا و رسول است یعنی هیچ وقت او مؤمن به خدا و روز آخرت با دشمن خدا و رسول دوست نمیشه ولو اینکه دشمن خدا پدرش باشه ولو كانوا او کانو آبا او ابنا او اخوانهم او عشیرتهم گرچه اونها باشند آبا آهم پدرانی اونها او ابنا فرزندان اونها او اخوانهم یا برادران اونها او عشیرتهم یا قوم خبیله اونها هیچ وقت با اونها دوس نیست دو تا نمونه از می کنم در جنگ بدر فرزند ابو بکر صدیق رضی الله تعالی نهو عبد الرحمن عبد الرحمن ابن عبی بکر در صف مشرکیم بود هنوز مسلمان نشده بود بعدا مسلمان شد یک روزی به پدرش گفت پدر من شما را در اون معرکه دیدم در معرکه بدر دیدم میخواستم بزنم اما اون شفقت پدری غالب شد من به حمله نکردم ابو بک رضی اللہ تعالیه به پسر گفت تو شانس آورده من تو را ندیدم اگر من تو را می دیدم سرت را از تر جدا می کرد. یعنی وقتی که در صف کفر هست پروانه داره پسر باشه پدر باشه هر کسی باش این, این دوستی چیه؟ فقط برای خدا این ابوبکری که سرمایش اس را میده بلال و امثال بلال را آزاد میکنه اما برای پسرش پروان نداره این این ربیغه الحب فی الله والبغضه فی الله یا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اشداء و الکفار رحماء بینهم را ببینید عمر فاروق رضی الله تعالی عنه در روز بادر ارز کنم خدمت شما که بعد از اینکه اسیران را گرفتند رسول الله صلی علیه و وسلم مشوره کردن با اسیران چی کار بکنیم الله شما تو سوره توبه میخانید حالی که مشوره دادن اکثر مشوره دادن که اینها را آزاد بکنیم از ایشون فدیه بگیرن چون همه نزدیکان صحابه و رسول الله بودن اموی رسول الله در میان اونها بود و نزدیکترین افراد به صحابه بعضی بر... صحابه بودن برادرانشون بودند اما عمر فاروق گفتی یا رسول الله اینا دشمن خدا هستند دشمن رسول الله هستند شما میگه اینا را با پول آزاد بکنیم نه هر کسی اگر خیشاوندی در میان اینها داره اون خیشاوند را به دست خودش بده خود حضرت عمر پسرمویش بود گفت پسرمویم را به دست من بده اول من سرش راستانش جدا میکنم بعد شما بقیه خیشاوندان خودتون را یعنی پروا نداشتند که خیشاوند باشه اما کافر باشه میگفت باید سرش استنش جدا باش همین عمر ببین این اشده و علی الکفار اما رحماء و بینهم را در ابتدای همین سوره در حضرت خوله خاندیم که خوله رضی الله تعالی نها یک زنی بود در زمان خلافت عمر فاروق رضی الله تعالی این خوله هنوز بود خیلی پیر شده بود یه روز حضرت عمر با اسب داشت می رفت کنار خوله که رسید استاد این خوله لگام اسب را گرفت حضرت عمر پیاده شد تا دیر وقت با وقت امیر المومنین را گرفت و خیلی سرزنش هم کرد تو امیر مومنین هستید تو چرا رسیدگی نمی کنید حضرت عمر سرش پایین بود هرچی گفت آخری یکی از یاران گفتیت پیرزنی این همه وقتش مار گرفت بعد از این که رفتا گفت مگه تو نمیدونی این کی هست این خوله هست این کسی هست که الله عزوجل شکایتش را در آسمانها شنید الله تعالی حرفش را گوش کرد و تشتکی الى الله الله اونجا شنید قد سمی الله قول اللتی تجا دلو کفی زوجه الله می فرماید من سخن این را شنیدم الله قول این را شنید عمر کیه که کی قول این را نشناد. هر گفت قسم به خدا اگر تا 24 ساعت من نگه می یک شبانه روز غیر از نماز فرض که می رفتم نماز می خاندم بر می دیگه تا عبد اینجا می ماندم تا حرفش تمام بشه این, درم، این چیه چی چیزی اینقدر عمر را نرم کرد روح ما بین ایمان اما اونجا اشد داو علال کفار لذا خدای عز و جل که این گروه اولین صفتشون اینه که یوادون من حد الله و رسوله لا تجد نمی بینی که دوست باشن با دشمنان خدا و رسول گرچه اون دشمن پدر باشد فرزند باشد برادر باشد اشیر و باشد اولائک کتب فی قلوبهم الايمان الله میفرمای این گروه این گروه کسانی هستند که الله بر زبان اینها نه مثل منافقین نیستن منافقین ایمان بر زبانشون بود اینها کسانی هستن که کتب فی قلوبهم ال ایمان نوشته شده الله اللہ نوشته در دلهایشون ایمان را در دلش نقش ایمان منقش است و ایدهم بروح من و اینها کسانی هستن که الله عزوجل اینها را تایید فرموده با روحی از جانب خودش روح یعنی چه بعضی از مفسرین میگن فیض قلبی یعنی خدای تعالی بر قلب اینها یک فیضان خاصی قرار داده و بعضی میگویند که والمراد بالروح نور القلب خدا قلب اینها را رو روشن کرده الّا واسه اینکه در قلب ایمان هست و درخت ایمان هست قلبشون یک نور خاصی دارد که الله تعالی در دلشون قرار داده وی ان این پاداشی در دنیاست، اما در آخرت وی ودخلهم جنات این داخل می فرماید الله انها در اون جناتی که جاری است زیر درختها و قصورچنارها خالدین فیها همیشه در اون جنات میمانند رضی الله عنهم و رضوان عن رضی الله عنهم سبحان الله چرا ها قرآن را نمی خوانند؟ تا نسبت به یاران رسول الله حسن زن داشته باشند. احساس میکنی که خداوند عزوجل با یک حساسیت خاص اینها را تعریف میکند چون الله در باره آینده میدونه چه خبر میشه لذا اول الله تعالی اخلاصشان را و قلب پاکشان را تعریف میکند و دوم اعلام رضایت میکند رضی الله عنهم و رضو عن اللہ از اینها راضی شده و اینها از ربشان هم راضی این پاداش دیگر چند تا پاداش خدا برای اینها ذکر فرمود اگر حساب بکنیم اولی میشه اولایکه کتاب فی قلوبهم ایمان اینها بر دلشان نوشته شده که مؤمنان دوم و ایده هم بر اینها در, در دل خداوند نوری عطا فرموده سوم ويدخلهم جنات تجري خداما اینها را در بهشت ده اینا بهشتی هستند چارم نه تنها بهشت که بهشت مادی و بهشت جسمانی بلکه بهشت معنوی و بهشت روحانی اون بهشتیه رضای خداست رضوان من الله اکبر لذا پاداش چارومشان رضی الله عنهم و رضو عن الله از اینها راضی شده و اینها هم از الله راضی وعده ش پنجم خدا اینها یک لقبی داده که این لقب مال اینها است مال اصحاب رسول الله است اولائک حزب الله اینا حزب الله هستند اینا در لشکر خدا و گروه خدا هستند پس حزب الله واقعی کی است اصحاب رسول الله هستند یاران رسول اللہ هستند اونایی که با کفر موالات اونای که در مقابل منافقین بودند الا ان حزب الله هم المفلحون الله میفرما آگاه باش با خبر باش که همانا حزب الله حزب الله به اعتبار انجام و نتیجه آنها چی هستند رستگار هستند